بسم الله الرحمن الرحيم يا بيت از كتاب بقني ربهم خانديم رسيدين ببيت دوازدهم واستلهاتي دين عزيز مرو اثنين او ثلاثة مشهور مرو فوق ما ثلاثة عزيز مرو اثنين خود جمله خیلی ساده است مبتدا و خبر عزیز مبتدا مروی هم خبرش هست اثنین هم مزافون لیه هست او هم حرف عطف تو هم که مشخص است. میفرماید عزیز اونی هست که دو نفر اون رو روایت کرده باشند او ثلاثه یا سه نفر اینجا لازم هست یک مسئلهی توضیح داده شود ما همه میدانیم که آدیس گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خودش مکتوب نشدن و معلفین بعدا اومدن به این شکل منظمی که الان ما داریم اینا رو جمعوری کردن. مثلا تا امام بخاری رحمه الله که اومده خیلی از آدیس جماوری کرده ما طبقات مختلفی رو داریم. زمان پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم که اصحاب احادیث رو ازش گرفتهاند بعد از اصحاب تابعین بعدش طبع تابعین بعدش طبع تابعین تا نویسندگان هر یکی از این میگن یه طبقه میفرماید عزیز به اون حدیثی گفت میشود که دو تا راوی اونو روایت کرده باشن یعنی در طبقه ای از طبقه ها از نویسنده تا پیامبر خدا صلی اللہ علیه و سلم در طبقی از طبقها اگر راویها دوتا بودن اون حدیث عزیز هست مثلا حدیثی رو دو صحابه روایت کرده باشند از پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیه و سلم بعد از اون مهم نیست ولو اون که نفر از اون دو صحابی روایت کرده باشند ولی در طبقی از طبقات دو نفر که وجود داشته باشد در موقع به اون حدیث میگن عزیز معنی حدیث عزیز این نیست که دو نفر از دو نفر و دو نفر از دو نفر دیگر و دو نفر از دو نفر دیگر تا رسول الله صلی الله علیه و شنیده باشد نویسنده کتاب مثلا امام بخاری از دو نفر شنیده باشد و اون دو نفر از دو نفر دیگر و اون دو نفر از دو نفر دیگر و اون دو نفر از مثلا رسول الله صلی الله علیه معنی عزیز این نیست معنی این که در طبقه ای از طبقه ها طبقه صحابه طبقه تابعین دو نفر اونو روایت کرده باشد امام بقونی می او ثلاثا یا سه نفر البته جمهورمون دو نفر رو میگن فرد اونی که یک نفر عزیز اونی که دو نفر مشهور رو در مصره بعدی آورده است مشهور و مروی فوق ما ثلاثا میگه مشهور به اون حدیثی گفته می شود که مروی بیش از سه نفر باشد این تعریف بهقولی هست بهقولی میگوید مشهور اونی هست که بیش از سه نفر اون رو روایت کرده باشند ولی آنچه که جمهور میگویند اونی هست که سه نفر اون روایت کرده باشد و بیشتر بهقول میگه بیش از سه نفر اون روایت کرده باشند یعنی سه نفر رو جزء عزیز میدونه، جزء مشهور نمیدونه. مشهور و مروی فوق ما ثلاثه مشهور مبتدا است. ترکیب مختلفی مختلفی داره، مروی هم خبرش هست، فوق که ظرف هست، ما هم زائد هست، میگویند به خاطر وزنی نوآورده آورده، و ثلاثه وضافون اله هست. پس دوتا اصطلاح در این بیت دوازهون کتاب آموختیم، عزیز و مشهور متواتر رو فکر کنم این کتاب نه آورده ولی جلوتر در مناسبات توضیح خواهیم داد در کل اگر میخوام یک توضیح کلی بدیم حدیث یا تقسیم بشه به متواتر یا آحاد البته طبق تقسیم بندی جمهور مستلحیین متواتر و آحاد آحاد خودش برسلو است. مشهور عزیز فرد یا همون واحد که عزیز رو خوندیم مشهور رو خوندیم میریم به به بعدی این مشهوری که ما توضیح دادیم منظور مشهور استلاحیست گفتن حدیث مشهور یعنی اون که بدونیم در طبقه ای از طبقات دو تا راوی بوده است وگرنه مشهور ما یک سری احادیثی داریم متعاترند مشهورند. یک سری احادیثی داریم فردن ولی بر زبانها شهرت دارند. حالا چه در نز اصولیین، چه در نز اوام ناس، کاری ندارند. منظور ما از مشهور، مشهور اصطلاحی هست. بله، مشهوری که در مصطلح حدیث بحث می شود. می رسیم به بیت سیزدهم کتاب معن عنون که ان ان کرم و مبهمون ما فیه راون لم یو میگه معنان به چه حدیثی گفته میشه؟ معنانون مبتدا هست اون حدیثی که در سندش ان تکرار میشه ان ان خودش آورده ان سعید ان کرم ان فلان ان فلان این حدیثی میگن معنان این کلمه یعن در شنیدن سریح نیست موقعی راوی دیگه عن زید، عن بکر، عن فلان ممکنه درش تدلیسی باشه سریح نیست در شنیدن که این راوی از استادش یا از شیخش یا راوی قبل, از قبل تر از خودت خودش شنیده باشد پس معنان که انسعیدنن کرم معنان رو توضیح داد معنان مبتدست خبرش اینجا ذکر نشده معنان کائنون که انسا اید ان خبرش هست، محصوف هست، و مبهمو ما فیه راون لم یوسن، مبهمو آورده تعریف کرده است، اصلاحی دیگه که در مصطلح حدیث بحث می شود، مبهم مبتدا هست، ما هم که بعدش اومده خبر هست، مبهمون ما فیه راوین، این خودش یک جمله دیگه هست، یعنی فیهی خبر مقدم راوی مبتدای معاخر لم یوسم که خودش یک جمله شعیلیه هست که فعل مجهول و نائب فاعل دارد پس معنن اونی هست که با انعن ان ان روایت شده باشد و مبهم اونی هست که راوی نامگذاری نشده باشد مبهم اونی هست که و مبهمون ما فیه راوی لم یو سم مبهم آنی هست که در آن راوی باشد که لم یو نامگذاری نشده باشد مثلا سفیان ابن عوینه بگوید حدسنا سفیان ابن عوینه راوی بگه نویسنده کتاب بگه حدسنا سفیان ابن عوینه انشیخن ان محمد ابن ابراهیم یک راوی در این وسط نام برده نشود اون موقع میگوییم که این مبهم هست محمل هم که اینجا چون مناسبت دارد توضیح بدهیم محمل برخراف مبهم راوی هست که نامگذاری شده است منتها نسبتش ذکر نشده است. سنان ما میان بگیم راوی میاد میگه سمعت ان زید ان محمد ابن فلانی این زید رو در اینجا نسبت ندهد این میشه محمل پس در بیت سیزار هم دو تا تعریف کرده بود معنان کعن سعید ان کرم و مبهم ما فیه راوین لم یسم مبهم که راوی درش اسمش برده نشود اسم راوی گرفته نشأده ما بيت شاردهم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلاء. در بيت شاردهم دو السلاح هاد يصير عوارضه عز باصهم يكي. ألوه عاليه نازل. ألوه نزول. سند عالی و سند نازل. این دو تا و اینجا توضیح داد. می بفرماد و کل ما خب کل مبتدا هست. کل که میشه مضاف ما مضافه الیه هست. الیهش هست. و کل ما قلت رجاله علا قلت فعل ماضی رجالو هست. که فائلش هست. هو مضافه الیه هست. علا دوباره فعل ماضی هست. و کل ما قلت رجالو علا هر سندی که رجالش کم باشند بهش میگن عالی علا, علا، بالا رفت خب، عالی شد پس هر سندی که رجالش کم باشند عالی هست حدیثی دو سند دارد از راوی آخر تا رسول از, را از اول سند تا رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم یه حدیثی فقط سه نفر راوی دارد یا چهار نفر راوی دارد همین حدیث سندی دیگر دارد 5 تا راوی دارد یا شش تا راوی دارد می‌گیم اون سندی که راوی هاش کمتر هستند تا پیامبر خدا صلی الله علیه از نویسنده تا پیامبر گرامی اسلام اون سنادو بهش میگند عالی خب مسلم هست سندی که در مقابلش قرار می‌گیره بهش میگن نازل این اولو رو در کتب حد مستلح تقسیم بندی های مختلفی پنج نو برای عالی و پنج تا برای نازل که هر یکی از نازل ها در مقابل عالی قرار میگیره چون این علوه و نزول زمانی پیش میاد که یک حدیث دو سند داشته باشن و یکی از دو سندها رجالش کمتر باشد که خودش بر دو دو هست یا علو مطلق و یا علو نسبی اگر اگر تعداد رجال حدیث سند از راوی تا پیامبر خدا صلی الله علیه و وسلم کم باشند بهش میگاد علو مطلق ولی اگر تعداد رجال از نویسنده تا امامی بزرگوار و بلند مرتبه در علم حدیث رویس امام مالک، امام شافعی و قطاده و الاخر. اگر از نویسنده تا یکی از ایمه بلند مرتبه تعداد کم باشند و از اون امام بزرگوار تا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعداد زیاد باشند این اولو اولوه میگن نسبی. پس و کل ما قلت رجاله علی و هران چه که رجالش کم باشند على أولم شواد وضده ذال ذاك الذي قد نزله وضد على وضد علي أوني هاس كننزله نازل هست إين ألف در نزل قد نزله ألف إتلاخ هست ضد مبتدا ذاك بزهم ذا مبتدا هست إين البتير دقي ما خيلي کلی تا... چی میکنیم اعرامشون رو برمیکنیم اگر نه باید که این محلن مرفوع هست چون جز مبنیها ها هست خبرش هست مبتدای ذاک الی، این مبتدا و خبر که یه جمله هستند دوباره میشن خبر ودهو چون قبلا ما خوندیم که خبر میتونه خودش یک جمله باشه که اینجا بحث این چیزها نیست پس عالی و نازل دیگه کاملا واضح است بحثی است در رابطه با سند حدیث زمانی که حدیث دو سند داشته باشد افراد یکی از اون دو سند نسبت به اون یکی دیگه کمتر باشند یکی از سلسله سندها عالی هست و دیگری نازل و ما اضفته الى الاصحاب من قول و فعل فهو موقوف ذکه بیت 15 متن منظومه بقونی اصطلاحی دیگر را توضیح هد که قبلا هم البته اشاره شد و اون موقوف هست میگه و وانترا که نسبتش بدهی به اصحاب وانترا که به اصحاب نسبت بدهی من قول و فعل چه قول باشد چه فعل باشد چه تقریر که قبلا گفتیم فهو موقوف و زکن اون موقوف هست که معروف هست زکن یعنی علمه عرفه صفت موقوف واقع می شود چون بعد از نکر اگر کلمه بیاد صفتش واقع می شود پس را که به اصحاب نسبت بدهی چی قول باشد چه فعل چه تقریر فهو موقوف و زکن هو مبتدا موقوف و خبرش هست این مایی که در ابتدا اومده بود و ما این هم مبتدا بود اون مبتدا خبر خبر مبتدا قبلی می شود ما دو اصطلاح خوندیم یکی مقتور و یکی مرفوع رو اونجا بود که بحث موقوف رو هم اشاره کردیم مرفوع هست که به پیامبر خدا صلی الله علیه نسبت می داده می حالا چه سند متصل باشه چه نه هم به طابعی و موقوف آنچه که به صحابه نسبت داده شده می میرویم چون قبلا هم عرض کردیم که خیلی خلاصه می توضیح میدهیم میرویم به بیت شانزدهم این کتاب ارزشمند ملغومه بیقولی و مرسلون به صحابی یسقت میگه مرسل و مرسلون و مرسل که مبتدا هست و مرسلون ما منه الصحابی یو خبرش ما هست که حس هست و مرسلو و مرسل منه الصحابی سقط صحابی ازش افتاده است حدیثی که صحابی ازش افتاده باشد بشویگند مرسل این تعریفی هست که به قولی ازش ارایه می دهد البته تعریف دقیق ترین هست که چونین بگوییم آنچرا که تابعی به پیغمبر نسبت میدهد. یعنی تابعی اونو به پیغمبر صلی علیه و وسلم نسبت میده. چون تابعی پیغمبر رو ندیده پس ما میدونیم که یه راوی رو انداخته حالا این راوی چه صحابی باشد چه تابعی دیگری؟ مثلا یه تابعی میاد حدیث و از صحابی و سقیم نمیشنوه از یه تابعی ای میشنود و اون تابعی از صحابی و اون از پیانبر خدا صلی علیه وسلم اگر مرسل فقط این باشه که صحابی افتاده باشه اون موقع ایرادی پیش نمیاد چون صحابه در روایت همه عدول عادلند مشکلی پیش نمیاد ولی اگر بخوام تعریف دقیق باشه همین از که بگوییم مرسلان است که تابعی آن رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبت بدهد این هم تعریفی است که به قوری آورده است که و بن صحابی و مرسلان است که صحابی ساقط شده باشد میتونه تابعی هم ساقط شده باشه ما که از ابتدای سند هست مرسل هست. و قول غریب ما و راو فقط اینجا اومده عزیز قبلا تعریف کرد این کتاب البته اصلا ترتیب رو رعایت نکرده میبینی مثلا بحث‌های مرتبط به هم موقوف و مقتوع و مرفوع که با هم مرتبطن جای دیگه اومد و موقوف رو تعریف کرد قبلا عزیز و مشهور تعریف کرده بود غریب هم مرتبط به اونا بود الان تازه اومده غریب و ترتیب میکنه. یعنی بیشتر شعر و اوزانش رو در نظر گرفته و هر کجا که فرصت پیش اومده اصلاحات تو توضیح داده ترتیبی رعایت نکرده. و قل غریبون ما را راوین فقط پس مرسل رو تعریف کردیم مرسل اینی هست که از انتهای سند صحابی یا تابعی ساقت شده باشن. وقول غریب ماروا راون فقط و بوگو اونی رو داره ختاب قرار میده که مصطلح میخونه مصطلحی و بوگو ریبون غریب اونی هست که ما روا راون فقط غریبون مبتدا هست ما هم خبرش هست و بگو غریبانی هست که یک راوی اون رو روایت کرده باشد ما قبلا دو اصطلاح عزیز و مشهور رو توضیح دادیم. عزیز اونی بود که دو تا راوی در طبقی از طبقات ولو مشهور هم اونی بود که سه راوی یا بیشتر در طبقی از طبقات تا به حد متواتر نرسد و غریب اونی هست که از یک صحابی روایت شده باشد. اون هست غریب. و قول غریبون ما روا راون فقط نگو که غریبونی هست که یک راوی روایت کرده باشد اونو فقط فقط این فقط فادرش زایده هست و قط هم اسم فیل هست اسم فیل اون اسم هایی هستن که معنای فیل رو دارن حالا چه ماضی چه چه امر ولی فعل نیستن این قط هم به معنای فعل مزاره هست، به معنای یکفی هست و اسم فعل هست پس حدیث غریب ای مستلحی اون حدیثی هست که راوی در سندش یا در متنش فقط فرد باشد یا در متنش یا در سندش میبینیم که یه راوی منفرد میشه در یه چیزی و كل ما لم يتصل بحاله اسناده منقطع اوصال بیته هم رسیدیم در مورد غریب البته من بگویم که غریب دو تا تقسیم داشت غریب مطلق و غریب نسبی غریب مطلق همونی بود که صحابه فقط منفرد باشه یعنی تنها یه صحابه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونو روایت کرده باشد اما غریب نسبی تفصیلک های دارد و به زوایای مختلفی میشه اونوش حرف زد لذا این توضیح مختصر داریم و کل معالمیت تصل به حاله اسنادوه منقطع او كل ک ما مضاف الیه لم يتصل بحالهم کین فعل هو خبر مبتدا است الاوصالک هم مضاف الیه حال سندش وكل ما لم يتصل حال سندش وصل نباشد و کلو ما لم ید تسل به حال اصنادهو. <تصفيق> و هرانچه که در هر حال سندش واصل نباشد، منقطع الاوصال اون منقطع هست. البته منقطع استلاع، لغوی که چرا؟ چون منقطع اون رو میگند که درش قطع باشه. حالا چه صحابی افتاده باشد؟ چه طابعی افتاده باشد؟ چه طابعه طابعی؟ بعد از اون چه نویسنده کتاب استادش رو انداخته باشد راوی رو ذکر نکرده باشد از هر کجای سند راوی افتاده باشد ذکر نشده باشد اون سند منقطع لغوی هست ولی اللهاظ اصطلاحی نه اللهاظ اصطلاحی از هر کجای سند راوی افتاده باشد اسم خاصی دارد اگر دو تا راوی پشت سر هم افتاده باشند، اسم دیگه ای دارد. اگر جدا از هم باشند اسمی، دیگر که همه اینها رو خواهد آورد. مثلا به عنوان نمونه ما مرسل رو خوندیم. مرسل اونی بود که در سند صحابی یا طابعی افتاده بود. حالا رسیدیم میگه منقطع. که گفتیم اللحظر لغوی از هر کجا سند قط شده باشد اللحظر لغوی میشه به اونو منقطع نامید ولی اللحظر اصطلاحی معنایی داره چون ما موزل داریم مرسل داریم معلق داریم هر یکی از اینها اسم خاص خودش رو داره که الان مرسل رو قبلا گفتیم اونی بود که تابعی می اومد حدیث و نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم می داد یه تابعی میگفت که پیغمبر چونین گفته خب ما میدونستیم که این سند منقطه هست شخصی راوی ذکر نشده ولی این انقطاعی که از آخر سند باشد پیش می مرسل منقطه اونی رو میگن گن اصطلاحی استلاحی اللحظه لغوی که بیقونی آورده است و این تعریفو یعنی شرط قرار نداده بیقونی چون میگه که هر از هر کجا راوی افتاد اون منقطه است ولی لحاظ اصطلاحی منقطه اون است که از وسط سند راوی افتاده باشد یک راوی یا بیش از یک راوی به شرطی که پشت سر هم نباشند چون اگر پشت سر هم راوی ها افتاده باشند بهش معزل میگویند پس منقطه لحاظ اصطلاح حدیثی اون سندی هست که از وسط سند یک راوی یا بیش از یک راوی افتاده باشد ولی راوی ها پشت سر هم نافتاده باشند. این تعریف منقطع هست و معلق برخلاف بر ضد مرسل هست. اگر از این سمت اول سند راوی افتاده باشد بهش معلق میگویند که به هم در این منظومه معلق و تعریفش رو نآورده است معلقات امام بخاری دیگه مشهورن اگر سقوط راوی افتادن راوی از اول سند باشد حالا چه یک راوی باشد چه دو راوی چه سه راوی چه بیشتر بیش میگن معلق به شرطی که از این سند باشد حالا قبلا ما مسئله موزل و توضیح دادیم که دوباره میاد موزل گفتیم زمانی که دو تا راوی پشت سر هم افتاده باشد بهش میگن موذع اگر از اول سند هم گفتیم دو راوی پشت سر هم افتاده باشد بهش میگن معلق در این حالت چی پیش میاد میگیم این هم معلقه و هم موذعه موذع موزل اون است که دو تا راوی پشت سر هم افتاده باشد از هر سمتی که باشد فرقی نمی کنه اگر از این سمت اول سند باشد بهش میگن معلق و موذع اگر از اون سمت باشد که صحابه بش میگن مرسل و موزر. که اینو تعریفش رو خواهد آورد در بیت بعدی والمعضل الساقطو من هسنانی والمعضلو المعضلو مبتدا هست الساقطو خبرش هست میگه معضل اونی هست که ساقط هست از اون اثنان دو نفر ببینید من به زبان روزی مثالی میزنم یا یک مثالی رو میزنیم اگر امام بخاری حدیث رو روایت بکند از حمیدی و از سوفیان ابن اوینه، از یحیی ابن سید انصاری، از محمد ابن ابراهیم تیمی و از القمه ابن وقاص لیسی و بعدش از پیامبر صلی الله علیه وسلم. این حدیث میشه مرسل. چون از اون سمت صحابه راوی افتاد. اما اگر بیاد استاد خودش رو ذکر نکنه. امام بخاری حدیث از استادش شنیده و استادش از استاد قبلیش. امام بخاری حدیث رو بیاد از استاد استادش نقل بکنه. استاد رو در این وسط بیاندازد. بیش میگن؟ معلق. حالا چه یک استاد رو بیاندازد؟ چه استاد استادش رو هم بیاندازد؟ بیش میگن معلق به شرطی که از این سمت باشد. یعنی از ابتدای سند والمعضل و الساقط و مره معضل هست که ازش دو نفر ساقط شده باشد. و ما بعدیش در مورد مدلس هست و ما اتا مدلسان نوعانی بس تعریف موزل و یاد گرفتیم اونی هست که راوی یا بیشتر به شکل متوالی اگر بیافتند اون موقع سند ما معضل هست و ما معتی مدلسن نوعانی مثلرا بعدیش اصطاحی دیگر رو توضیح می و میگوید هرانچه که بیاید مدلس بر دو دوو هست ما مبتدا هست والمعضل و از منه افنانی, افنانی هم فایل از هست که اسم فایل و ما اتا مدلسا نوعانی ما مبتدا هست اتا فعل مازی با فائل مستترش مدلسا حال از فائلی هست که در اتا مستتر هست نوعانی هم خبر ما هست که در ابتدای مصرع اومده است. و ما اتا مدلسا و اولی که آمده است مدلس حالتشه نوعانی بر دونو هست پس تدلیس که از دلس اختلاط نور با تاریکی گرفته شده است. چون اینجا هم راوی کاری شبیه اینو انجام میده دیگه. بگونه ای که حرفش دروغ نباشه میاد کاری میکنه. و ما اتا مدلسن نو تدلیس اونی که مدلس بیاد بردونو هست. الاولو الاسقاطل شیخی و ان ينقل عمن عم فوقه بعن و ان الاول نوع اول تدلیس اینی هست که شیخش رو ساقط میکنه راوی حدیث یکی از راوی ها میاد چیکار میکنه خودش. شیخ خودش ببینید در اصطلاح حدیث موقعی که میگیم شیخ یعنی اون شخصی که این راوی ازش روایت کرده مش میگند شخ؟ حالا این راوی که از راوی قبلی روات میکنه در راوی قبلی رو میگیم شخ و راوی که میاد دوباره از این راوی دیگه روات میکنه این میشه شخ اون هر که از اینا برای کسی برای اونی که دیگری که داره ازش روات میکنه شخ حساب میشه. هاد. پس اول اسقاط لشیخ نوع تدلیس اسقاط شخ هست که راوی میاد چون استادش شخش اونی که داره ازش روایت میکنه، اگر اسمش رو ببره، روایتش قبول نمیشه. حالا به هر دلیل، میاد شیخشو رو ساقط میکنه، از شیخ شیخش نام میبره. ولی با چه الفاظی؟ با الفاظی که احتمال شنیدن درشون هست، الاول الاثقاط للشيخ وأن ینقل عمن فوقه بعن و نه. پس تدلیس اینی هست که راوی میاد از کسی که اونو دیده و ازش شنیده چیزی رو روایت میکنه که ازش نشنیده با هایی هم روایت میکنه که احتمال شنیدن درشون باشه مانند عن از از فلانی روایت است. سمیتو تاکی بگه دیگه اینجا دروغ حساب میشه میاد میگه ان احتمال شریدن در این کلمه وجود دارد پس نوع اول تدلیس الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن عم فوقه بعن و انه بیاد با کلمه عن یا ان با تجدید روایت بکنه پس این شد تدلیس اسناد قدليس البته بر طبق تقسیم بندی مشهورش اگر نه تقسیم بندی های زیادی دارند طبق تقسیم بندی مشهوری که ناظممون او ذکر کرده است می فرماید که مدل و ما اتا مدلسا نوانی مدلس بر دو هست اول الاول الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن و انه هست که شیخ رو ساقیت کند و با عن و ان از بالاتر از خودش روایت کند اسم شیخ رو نبرد با عن و انه از شیخ شیخش و بالاتر روایت کند اگر راوی اومد از کسی که هم عصرش بوده اما اونو ندیده چون اینجا دیگه احتمال پیچیده تر میشه روایت کرده باشه یا اینکه از هم اصرش روایت کرده باشه و اونو دیده باشه اما ازش نش دیده باشه هدیسی اون موقع بیش بیاد مرسله خفی خلاصه الاولو الاسقاطون الشیخی و این ین قل عم من فوقهو بان و انه اول نوع تدلیس این اسقاط الشیخ هست شیخش رو نام نبرد و از بالاتر از شیخش هدیس روایت کند با الفاظ عن و انه یعنی این نوع الفاظی که سیغه های که احتمال شدیدن درشون هست عن، قاله و این الفاظ پس تدلیس اسناد همین هست که راوی شیخی رو که حدیث رو ازش روایت میکنه میاندازه و حدیث رو از شیخ شیخ با سیغه هایی که احتمال شدیدن و نشیدیدن درشون باشه بیاد حدیثو روایت کنه این نوع اول هست این بود تدليس اس اما نوع دومش که در بیت 20 بي کتاب ذکر میکند و وثانی و لا يثته لكن يصف اوصافه بما به لا یعنی نوع دوم تدلیس اینی هست که شیخو ساقط نمیکنه، شیخش رو ذکر میکنه و مبتدا هست لا يسقطه این هم که یک جمله فعلیه هست لا يسقطه فعل مزاره هست فائلش هو هست که درش مستتر است، فعل با فائلش بیشند خبر مبتدای قبلی که الثانی هست الثانی در اصل الثانی هست ولی یاش یا رو به دلیل اوزان شعری حذف کرده و الان دیگه کسر داره زنبه رفش هم مقدر است و الثانی لا يسقطه نوع دوزون لا يسقطه شیخ رو ساقط نمی کند لیکن یصف لیکن وصف می کند اوصافه اوصاف او را اوصاف اینه مفهول بهیه اوصاف شیخ رو بما بهی عرف. به اون چیزایی که با اون اوصاف مشهور نیست بیاد شیخش رو اسم می منطقه یه لقبی میده که با اون لقب مشهور نیست شراخت شده نیست با اون اسم مشهور نیست این شد از تدلیس در شیوخ اونجا تدلیس در اصناد کرد اینجا هم تدلیس در شیوخ البته این اصطلاحات در خود کتاب نومده است کتاب دیگه و شروع دیگه آوردن اما بداریم که این, این دو نوع تدریس از مشهورترین انواع تدلیس هستند که در نوع اول شیخ رو کلن می اندازه. یعنی سند منقطع هست در دومی سند منقطع نیست چون راوی نه انداخته ولی با اسمی اونو آورده که مشهور نیست تدلیس کرده خریب کاری کرده تا همینجا بیت بیستومه بقونیه در جلسه دوم با فایل دوم اکتفا میکنیم انشاءالله قسمت آخر بقونی رو در فایل سوم توضیح خواهیم داد موفق و پیروز باشید.